سوی نام ورزنگی شاوران بیا دل را به رنج گران برو تا به درگاه افراسی ها به رنگی من باش و من گرودان و این خواسته هرچه هست و جوزه تا جوزه تخت نشست چون این هم همه باز در پیش اوی بگویش که ما را چه آمد برود بفرمود بهرام گودرز را این نام لشکر و مرز را سپردم تو را خاک با و کوس بمان تا بیاید سبهدار تو به دوده تو این لشکر را خواسته همان کارها یک راسته فراراسته یک به دود برشم هرچه هست به گنج و زتاج و به تخت نشست چو بحران بشنید گفتار اوی درشگش پیچاند تیمار بود به بارید خوم زنگی شاوران به نفرید بر هاماوران پر از غم نشستند هر دو به هم روانشان ز گفتار او شد دو جم به دو گفت بهرام کین رای نیست تو ترابی پدر در جهان جای نیست یکی نامه بنویس نزدیک شاه دگر بار از او پیلتن را بخوا اگر جنگ فرمان دهد ده جنگ ساز سخان است هر نگردد دراز گر گیری سخن تنگ نیست تو را در بدر ننگ نیست. نووا گ فرستی به نزدیک اوی بخندت دل و جان تاریک او. درست کرد چونین رنج گشت از نوا رها کن ن و چنگشکست تو و جواب گواه به نامه جز از جنگ فرمانش نیست. نرخده کاری که درمانش نیست به فرمان کاووس جنگ آوری جهان بر بدندیش تنگ آوری مکن خیر اندیشه بر دل دراز سر او به چربی به دامار, به دامار باز مگردان به ما بر دو جم روزگار چون آمد درخت بزرگی به با پر از خون مکن دیده ی تاج تخ مخوشان زبان خسروانی درخت نه نیکو با قد بی تو تخت و کلا سپاه و در و و بارگاه سر و مغز کاهوز آتش کرده است همه مایه و جنگ او بیهوده است مگر آسمانی جزین است راز چه باید سخن کشیدن به راز نفذ رفت داره اینجا میبینی که بهرام پسر بودرز اینجا میبینی که این راه درست رو میگه اینجای که تو کاره نیست او مهموری، مهمور پدر. یک یکی دوباره که گفته جنگ کن اولا بنویس نامه ای مزرس بخواه با این که جانه توست با این خب پدره از پدر آدم، آدم پدرش حرفی بزنه که درست نباشه باید بگه این درست من یادم که هیچ دست هلم بود پدرم به کاره میکرد که من باش موافق نبودم بعد میگفتم آخه این این یکی از قومخشتان هیچ ثوادم نداشت ولی شور داشت گفت هاید بگی خیلی خوب گفتم آخه این درست نیست گفت میدونم درست نیست ولی این پدری که اولا که تازه منم به سن اون نیستم شاید این یک چیزی میبینه که منم نیمینم ولی حالا فرض میکنیم که درست نیست به تو میکنیم کار بکنم باید بکنیم. و بس پدر بزوش باستن اولا نهنگلی بسید بعد هم روستن رو اول هم روستم. مغزش بیشتر از بازوش واسه ایران کار میکرده به طور کلی با هم. و بعد هم جنگ خواه جنگ کنی گروگونه رو میخواد بفرست شا گفت فقط جنگ کن من مغزش آتش کرده است یعنی دیوانه است. ولی خب چکا کنیم خر اینه و این به تو بر نمیگرده این کار این هرچه چه تقصیر و نا هست به عهده اوز حالا میخونیم از اول اینا رو بهرام بود یعنی بهرام پسر زرد تو اینم ای بر زنگه شادرم بیا را دل را به رنج گران بیار را دل را به رنج گران می زحمت بکش دیگه این زحمت بکش بیار آیدل را به رنج گران برو تا به درگاه اخراسی ها میخواد بفرست شون را من باشون خواب. یعنی با عجله برو خیلی بود. برو گروگان و این خواسته هرچه هست زگن جزه تا جزه تخت نشست چون این هم همه باز بر میشه اون بگویش که ما را چه آمد به اون ببر این گروگان و این کاله ها و این وسایل و اینا که داده بعنوان اصطلاح برای آشتی ببر پس پیشش آدم ها گروگانارا هم که رستم لیست خودش داده و چیز کرده ببر و بگو که ما چه به سر ما که چه اون اومد و وضع ما بگو که چجوریه یعنی تابوس اینجا کردید بفرمود بهرام گودرز را این این ماموریت سنگین است زنگه, پس زنگه باید گروگانا و اساس رو سرکی دادن، ببریم شهر را به بهرام هم میگه که تو هم این سپاه رو نگه دار و باش تا توس بیاد و سپاه رو بده به اون. اینم مهموریت بهرام. بفرمود بهرام بوده ارز را بفرمود یعنی دستور داد. ده دفعه گفتم، اینم دفعه یازده به بهرام و گودر داد که این نام بر لشکر و مرز را مرز چند بار گفتن منی سرزمین و با, با کلمه مرق مرقزار و با, با کلمه مرج اونم به منی چراگاه یک کتاب عربی داریم مروج و زهب یعنی چراگاه های تلایی این مروژ و زهب و از یکی مثل ثواد منه میخونام مرد به جزهب یعنی <تصفيق> ولی نه، این مروژه مروژ و زهب یعنی کراغاه های تلاییم مرد یعنی سرزمینه، این که حالا اخیرن به معنی سرحد گرفتن خیلی تازه است، چه ساله؟ بفرمون بهرام و گودرزا که این نامبر لشکر و مرز را سپردم تو را پاک پاک اینجا خیلی دیگه کاملا با پیل و کوس به من تا بیاید سپهدار توس تو اینجا باش تا بیاد تحویل اون بده من دادم به تو تو هم تحویل اون بده به دوده تو این لشکر را خواسته خواسته گفتم من این مال و چیز اموال همون کارهای یک سر آراسته یک یک به دو بر شمار هر چه هست ز گنج جزء تاج و تخت نشست اولا می‌بینید که به فاصله 4 5 به گنج جزء تا جزء تخت نشاست این مصرع تکرار شده 4 بیت بالاتر عیناً آره جستون رو ببینید بعد برشمردن بیشتر به معنی پابگویی کردن آره سخن‌های کایک به دو برشمرد یعنی گفت بهش که تو این ای رو این ای رو این ای رو برشمردن بیشتر معنی انتقاد کردن ولی گاهی معنی شمردن هم به کار می‌ره میشه اینجا اما بیشتر اون معنی نهانی همین شوی را برشمرد یعنی بعد می‌گفت واس شوهرش یک ها یک به دو برشمار هرچه هست گنج رو زتا جوز رفت نشد وحرام ناراحت شد چون بهرام بشنید گختار او دلش گشت پیچان تیمار او تیمار درد دیگه نیدونه به بارید خون زنگی شاورا گریه کن به نفرید نفریدن یعنی نفرین کردن نیدونه به نفرید بر بوم هاماوران بوم هم به معنی سرزمین باز خیلی هم خوهن است تو کتیبه های حقامنشی به همین صورت بوم به معنی سرزمین آماده هاماوران هم یه کییس از عربستان همون جایی که حالا بهش میگن یمن جنوب جنوب شبه جزیره عربستان هماوران صورت فارسی شده کلمه ی همیار، همیر همیری یعنی یمنی همیار شده هماوران ببارید خون زنگه شاقران، به نفرید بر بوم هماوران برای که همه این گرفتاری همون زن تولید کرده پر از غم نشستند هر دو به هم به هم یعنی با هم به به معنی با پر از غم نشستند هر دو به هم به به معنی با روانشان ز گفتار او شد دو جم خیلی ناراحت شدن. به دو گفت بهرام بهرام عقلش بیشتر از زنگه بوده به دو گفت بهرام که این رای نیست میگه این نظری که تو داری میدید درست نیست تو را بی پدر در جهان جای نیست تو از پدرت جدا نباید باشی بدون پدرتو جا نداری در دنیا یعنی اگه از پدرت نداری شید چیزی نداری, چی نداری. کسی تحویلت نمیگیره همه وزن و ایناتو از دست میدی جایی در دنیا نداری دو گفت کان که این را نیست tan bajo در Boricama sentado. 道 red 주세요. inferiores chungo. Cherry kuras o inc проч Peace. Ego de اول de lo 6 chungo. CIN Dr. K نزدیک chulo ça. Chungo. Coo муж有 radioe. Ego de fatherinator nu. tappingan do, ce voy a usar. چه de superficie. نبود تازه 있agna. Esa بیاد. برای اینکه برخورده بود بهش دیگه یکی نامه بنویز کنیدی که شاه این, این تراجدی و جریان خودشو رو تهی کنی یعنی روستن باید اول بره بیرون اگه بود که نمیساش این به اون سر نمیشه برسی ولی اینا باید اتفاقی بره. اگر جنگ فرمان دهد جنگ ساز تو که کاری نیستی؟ شاه گه جنگ کن کن سخون کنته است در مگردت دراز میگه کار خیلی روشنه اگه کشش ندی گفته جنگ کن جنگ کن جنگ نکن جنگ نکن تو معمولی تو که خودت فرمونده نیستی که گر آرام گیری سخون تنگ نیست تو را توزشن در پدر ننگ نیست میگه اگر ناراحت نشی و حواستو جمع کنی وضعت خیلی بد نیست معذرت خواهی از پدرم برای کسی ننگ نیست پدر آدم گوش آدم هم زد هیچی نمیگه دیگه نوا گر فرستی به نزدیک اوی گفتم براتون که نوا به عنی گروهانه سه تا معنی داره یکی آهنگ است. به طور کلی آهنگ موسیقی رو میگن نوا یک دستگاه موسیقی هم هست دستگاه نوا جداگانه نوا به معنی ثروت و تمبل هست که آدم فقیر رو بشکن دی نوا دی نوا به معنی گروهان هم حافظ میگه تا لشگر قمت نکند ملک دل خراب جان عزیز خود به نوا میفرستند یعنی گروغان نوا فرستی به نزدیک اوی بخندت دل و جان تاریکه اوی جا گروغان برسی خوشحال میشه اینا رو همه رو بزنه و بکشن جان تاریکش دل جان تاریکش دلتگرد چون این رنج گشت از نوار رها کن گه اگه خیلی نراحتی از اینکه جون اینا رو به خطر بنیزید بلشمون برن تو ن... نبر نه تو چک است و گوا چک درست به همین معنی چک بانکی امروز صد درصد معنی حواله است چک که میدونید چک حواله است یعنی شما چک میدید به من به اون بانکتون میگید آقا من از این پولی که دارم پیش شما هزار دلار 50 دولارشو میدید به این آرش این حواله است میدید حواله میدید سر بانک به نام این فارسیش هم چکه و من میدیدم که بعضی بازاری ها چک دادم بعد اول فکر کردم که اینا عوام شده این که میگن چک دادم میگن چک دادم ولی بعد که شانامه رو خونده میادم نه داریم ما همین کلمه رو توی،, توی فارسی داریم به صورت چک دیگه اگر از, از نواها از گروهان ها ناراحتی بلشون کن برن تو که اسم اینا رو ندادی تو که حواله نداری تو که برات ندادن که اینا رو تعویل بدی گواه هم که نداری که کسی بره بگه قربان من دیدم این بیس نفر دست ایشون بود این برش کرده نه ما این که نمیگیم حواله براتی هم که نداری نواها را اگه ناراحتی بلشون کن بایدم جنگ میگه هم کن بکن بود از یه ریشه میاد دیگه اینا اینا ریشه اولیشون یکی بوده اینا یک زبان هست که ما نمیدونیم کی حرف می نمیدونیم هم یک کلمه هم ازش نداریم احیانن در روزگاری حرف میزدن این زبان رو که هنوز خط پیدا نشده بوده مثلا ده هزار سال پیش اسم این زبانم نمیدونیم کم اینکه اسم زبان های باستانی خودمون مهم نمیدونیم زبان عوستایی رو که اسمی رو اوستایی یه روزی مردم به این زبان حرف می‌تکن اسم این زبان چی بوده ما نمی‌دونیم چون فقط عوستا باقی مونده دانشمنده اخیرن اسمی نگوشتن اوستایی. یا اون زبان پارسی که به خط میخی می‌نویزن زبان کتیبه‌های اخوانشی ما رو نمی‌دونیم که کسی ما نگفته، اینجا نیست دانشمندان رو گوشتن فارسی باستان. اولد پرژن به فرانسه بیا پرس اسمشی نمیتونی اون زبون تازه از اینا قدیمتر خیلی میشه بوداشتن زبان هندو گروپایی حالا از من نمیپرسیم که زبونی که تو میگی که یک کلمه ازش نداری تو اسمشم نداریم. تو وقتی یک کلمه نداریم هم نداری فقط کجو میگیم که زبونی هم. جواب اینه که علم زبان شناسی خیلی پیشرفت کرده و بر اساس قواعد زبان شناسی اینو از مقایسه زبانهای باستانی یعنی سانسکریت و اوستا و فارسی باستان و زبانهای میانه و زبانهای نو با هم به این نتیجه رسیدن که همین از یه زبان گرفته شده و حد زدن دانشمندان بر اساس قواهد علمی به این نتیجه رسیدند که این زبان گرامرش باید اینطوری باشه این لغت هم در اون زبان اینطوری بوده زبان هند اروپایی ریشه تمام زبان هایی است که یعنی نژاد سفید این کسانی که شکل ما ها هستن دو دسته زبان دارن یه دست زبان های سامیز، سمیتیک بهش یه دست زبونای هندو اروپاییست زبونای سمیتیک به کلی وضعش با زبونای هندو اروپایی فرق داره مثلا در تمام زبونای هندو اروپایی پدر تقریبا یه جوری، به فرانسه میگن پر تو دعات ایران هم میگن پر در آلمانی میگن فاتر در انگلیسی میگن فاتر فارسی هم میگن پدر معلوم اینه یکی در عربی میشه اب اب برادر هم دیر. تو همه این یه جوره تو عربی هست اخ بعد در فارسی مثل انگلیسی شش دیگه داره فعال مزاکر محنس هم نداره حالا بعض زبانه مزاکر محنس هم داره اما فعالشون شش دیگه بیشتر نداره سه شخص اول شخص سپم در عربی و زراب و و زراب و زراب و زراب نه تا زراب و زراب تون زراب زربت زراب همه اینا رو اون زبان رو میگن زبانه سمیتیک، زبانه سامی، این زبان رو میگن اینا ریشه اش یکیه بنابراین نمیتونیم بگیم که چک فارسی در از چک انگلیسی گرفتن یا چک انگلیسی را از چک فارسی گرفتن نه از یه جا میاد و همین در اینم شبیه هم بخت خوب نوا گر فرستی بنزیکو دل و جان تاریک وای دلت گر چونین رنج گشت از نوا رها کن نه بر تو بر تو یعنی به عهده تو علی هم در عربی علیه علا با این یعنی بر او بر احده بود بعد اینکه می نوشتم قدیم بر علیه استعمال مبارزه کنیم یعنی بر زده بر علیه معنی فارسی بخوان در میشه بر بر او بر بر اون استعمار مبارزه کنیم مزهرفه هم با استعمار مبارزه کنیم مرزو به بر حال بر من یعنی به عهده من بر تو بر تو چک چک و نیست یعنی نه حوالهی بر ضد توست نه شاهدی که بیاد به این که تو این کار باید بکنیم بنابراین بریشون کن به دلت چون این رنجگست گشت از نوار رها کن نبر تو تو چکست و گوا؟ به نامه جز از جنگ فرمانش نیست میگه در نامه فقط جن... فرم... دست رو که جنگ کن نرفته از کاری که درمانش نیست کار بی درمانی کاری که نشه علاجش کرد نایمده تو این نامه بنابراین ناراحت نباش. تمام درست نیمتا به فرمان کابوس. جنگ آوریم جهان بربدندیش تنگ آوریم مکن خیره اندیشه بر دل دراز خیره یعنی بیهوده یکودی مکن خیره اندیشه بر دل دراز سر او به چربی به دام باز گفتم بارها که چربی معنی خوش‌زبانی و مهربانی است آدمی که زبان خوش داره میگن خیلی زبون چرب و نر میداره از میگه چرب زبان یعنی سخنگون کسی که خوب بلد حرف بزنید خیلی عوام و ناس میگن سر و زبون داره میگن فلان کس سر زبان داره اون یعنی چرب زبان مکن خیر اندیشه بردل دراز سر او به چربی به دامار باز میگه یه زره تملو بگو چشم، چشم بابا جون <تصفيق> نوکر شما هم کارشما انجام درست میشه دیگه سر او به چربی به دامات باز مگر دان به ماه بر دو جام روزگاه میگه ما طاقت دولیه تو رو نداریم علاوه از این که دشته میره داره میرد تو خواهد دشمنش معلوم شد به سشبازیت میگه زندگی ما رو طرف نکن روزگار ما رو طرف نکن اگر دان به ماه بر دو جام روزگار چون آمد درخته دیگه وقتی درخت بزرگی میوداده یعنی یه شاهزادی مثل تو از اون مرد کوتاخرت به وجود آمده دیگه اینو خراب نکن زندگی ما رو بد نکن پر از خون مکن دیده یه تاژو تخت چشم و تخت و تخت رو تشمیم کنه به یه شخصی محصول از تاج تخت هم پادشاهیه دیگه تخت. میگه چشم چاپ رو پرخون نکن پر از مکن دیده تا ته خوشان خوشیدن به همون معنی خوشیدن بلکه خوشانیدن خوشیدن یعنی خوش شدن خوشاندن یعنی خوش کردن من خوشان زبان خسرو بامیده ره. میگه این درخت پادشاهی رو از ریشه خشکش نتن ننی کوب و بد پی تو تخت و کلاه یه تخت و کلاه کلا بدون وجود تو به درد نمیخوره سپاه و در و پرده و بارگاه سپاه و در و پرده و بارگاه همه وسایل سلطنت طبیعی بارگاه گاهش پس بند مکانه بار هم یعنی اجازه یعنی جایی که آدم میخواد بره تو باید چه کنید؟ اجازه بگیره بارگاه اگه یه وقت گفتیم بارگاه رو بگین یعنی چی؟ باید بگین یعنی جایی که آدم باید با اجازه اجازه بگیره بره تو سر و مغز کابوس آتش کده هست در حقیقت به زبان عدوی میگه دیوونست دیگه سر کابوس آتش کده همه مایه و جنگ او بیهوده است یه همه کارش هم بیخودیه مگر آسمانی جزید نست راست یعنی اینا همه به دلشون الهام شده یه حادثه بدی بر اثر سرنوشت داره اتفاق. اینا هیچ کتاب دیگری در تمام ادب فارسی نمیدوسته من چند دفعه پیشتون گفتم. این چیز دیگیریه غیر از اینکه ورده میگه رماني بخونید مجل کتاب شیرو بخونید، تالیگا رو بخونید، نمی دونم فلان رو حسین کورد رو بخونید، امیر سلار. این نیست. این تمام جزئیات اون چه در اعماق ذهن هر کسی می داره همجور رفته و گشته و اصلا آدم بیمانندیست می پیردوست مگر آسمانی جزئی نست راست مگر یعنی شاید از زبان قهرمانش میزنه. فیلوسی میزنه. ولی از زبان قهرمان این الان بحران را داری حرف میزنه. بحران به سر دو درسته. ولی خواهر فیلوسی آسمانی ها آره دیگه. یعنی چیزی از بالا میاد. مگر آسمانی، راز آسمان چیز دیگری. آخه، روحی اصلا که میدونید همین حالا بدون اینکه گون که در ادیان توحیدی میگن که خدا همه جا هست و هیچ جا نیست همه جای عالم هست و همه جور میشه خدا رو در هر جا خوند ولی معمولا وقتی ما بگیم خدایان پروردگار نَص می‌گن رو بالا سر ما رو بالا یکی از دلایلش اینه که نه که بشر هیچ وقت به آسمون نرسیده <تصف> ای پرواز و اینا 4 روز تازه تازه هیچی نیست یعنی رفتن این آرنس چانگ از،, از روی زمین به روی ماه با پریدن با پریدن یه مگس از اینجا به اینجا در در نسبت بزرگی طبیعت یکی یعنی هیچی نیست این برای بشر خیلی مهم بوده که یکی پاشو بذاره رو اون بمر اما در مقیاس طبیعتی فردی ما اینکه یه مرشه اینجا تا اینجا رو را بره فرق نداره اینکه که آسمان دسترس بهش نبوده همیشه به طور ناخودآگاه فکر کردن که اون که سرنوشت تعیین میکنه، اون بالاست بعد هم سیارات رو هم یه قدری مؤثر میدونستن یه ادههی که اصلا ستاره فرست بودن فکر کردن سرنوشت و ستاره ها تعیین میکنن برای آدم اینه که به هر جهت توجه بالا بوده، اون چه میگن آسمانی یا بالایی یعنی معاوراتت نتفز. مگر آسمانی و آسمان رو هم بهتون گفتم که آسمان یعنی چیز گردنده آسمان یعنی چیزی که میچرخ در فارسی باستان هست آسمان هست اسمان در،, در،, در چیز در, در کتیبه های حق آمانی یعنی شید آسمان این چیزی گرده آسیاب رو هم به همین دلیل میگن آس آس یعنی چیزی میچرفی آسیاب آس آب یعنی آسی که با آب میچرفی دستاس دستاس یعنی آسیابی که با دست دیدید دستاس سنگ های نسبتاً کوچولویی داره اینقدر نازک و روی کشیت که چوب گذاشتن رو سنگ بالایی بعد اون چوب میگیرن میشه این سنگینی خود این سنگ چیزای کوچولویی مثل ماش و عدس و اینا رو لقه میکنه یا گندم رو خیلی درشت درشت گرد درش میکنه آرت نمیکنه قدرت رو نداره با دست میچرکن خراس یعنی آسیابی که با خر میچرکه دستگاه های بوده یه سنگ آسیاب بوده از درد کلخت به این کلختی بزرگ بعد اینو روی اینجاش می‌ذاشتن اینجوری می‌ذاشتن چرخ بعد چوب میکردن تو سوراخ وسطش چون مثلا گردن خر یا عصب از که نه یابو بعد اینه چشمش هم میبستن اینه دور میگشته دور میگشته و بعد کنجت میریختن اینه میخواستن روغن بگیرد نه می‌ریختن استاری میگفتن دو خون استاری استاری یعنی دو روغنگیری بعد این روغن از اون زیر بادوم نمیدونم کچک هرچیو می‌خاستن روغنش می‌گیرن می یکسان تو اون استام می‌گاشتم دو و این سنگو توی گودالی و حرکت می‌آوردم می‌چرخون روی اینا, اینا رو چی, چی میگیره؟ اونو اونم می‌گم خراست یعنی آسیاب که خراب می‌جاده نظامی این دندونا رو دندونای kursi رو میگه خراست یعنی آسیای خوردن میگه به هر جو چقدر <تصفح> به هر جو که افکندم در خراسان دوری باز دادم به گوهر دور یعنی مرواریه یه در مقابل هر یه دونه جوی که انداختم تو دهنم یه دونه مرواریت دادم مراد یه بیته به هر جو که من در خراسان دوری باز دادم به گوهرشناس هزار آخرین مرسخنگستری که باز آورد از هر جو جوهری هر جو و جو. چه چقدر زیباست و هر جو میخواد یادداشت کنید اگه تو و هر جو که افکندم کندم در خراسان خور با باب میگینس دیگه و هر جو که افکندم ان در خراسان دوری باز دادم به گوهر شناس هزار آفرین بر سخنگستری که باز از هر جوی جوهری میدونید که اینه خوندن که به مونده سال 27 اول بار خمسه این من سال ۲۷ گوندم الان هست سال ۷۴ یعنی ۳۷ سال پیش <coughs> خب، بگذاریم شما no, no, این سه نو نو عقلتون ها رفت از دو خیرد دیگرگونه بود راست چرخ بلند چون این داد پاسخ که فرمان شاه به آنم برانم بر آنم که بر طرز خرشید و ما ولی کن به فرمان یزدان دلیر نباشد که اومن پیل و نشید کسی کوز فرمان یزدان بتا سراسیمه شد بیشتن را نیاد همین دست یازید باید بخون به کین دو کشور خودن رهنمون سبخ نواهم های سخنهای دیوینه یاداردو بگر باز کردم از این رزمگاه، را شوم کار نا کرده نزدیک شا نزدیک شا همان خشم و پیکار بار, بار آورم بار آورد, آورد. سرش که در کنار آورد اگر تیرتان شد دل از کار من بپیچید سر تانز گفتار من گفتار من؟ آه. فرستاد خود نه، دوباره بخون اگر, اگر تیرتان شد دل از کار من بپیچید سر تانز گفتار من فرستاده خود باشم و رهنمای بمانم در این دشت پرد سراد سر پرد سراد کسی کو نبیند همی گنج من چرا برگمارم برورنجمه؟ بسیار درمان بستم <تصفيق> من از کنم که سیاهش دیکی که مطالب جوابید میگه که اول خلاصش میگم بعد پرد قید میگه بید بید. که اولاً خب پرمان شاه خیلی مهمه ولی من خون مردم بریزم خدا چی جواب بدن؟ بدون هیچ علتی شنو در آشدی میزن آخو من چشویرم با گوشمشون یک دومی دو که تو میگی که فرست چیزا رو رو آزاد کن و, و حواله من حواله چیز سیستم میدونه گروگان ما گرفتیم برای اونم اذیت میکنه و دوباره حرفای بد میزن. به علاوه ای من کاری انجام نداده برم شروع میکنه حرفای زشت دادن و اشک منو در میاره در نسخه‌های قدیمتر هست سرش که غمم در چه برد به نظر من درست ترم نست یعنی مرا دهشقی غم در کنار من میاره سرشق قمم در کنار آقا بعد میگه اگر شما ها ناراحتی من خودم میرم به جای فرستادوی خودم خودم میرم این منامولیت را انجام گفتم به شما اینا خودم انجام میگم برای که شما که پولی از من نمیگیرید و فایده ای از من بهتون میرسه چرا زحمت من رو بکشید؟ نه اینکه بگه شما پول میخواد یعنی توجه بکنید ها نمیگه میکید من که ایش منفعتی از من به شما نرسیده حالا چرا زحمت هم به گردن شما خودم حالا <تصفيق> نه پس رفت از آن دو خیرتمند پن میبینی اینجا باز فبروزی این کللی رو کرده منش مهمه میگه این دوتا خیرتمند عقل داشته این پیشنهایت میکرده درست نه رفت از آن دو خیرتمند نه همینجا میگه که این نظری که سیاهش میدهد درست نیست منطقه اینو آشکار که نمیگه که اون دوتا تجربه دیده بودن، آقل بودن راه درست گفت. بعد این چیز ممکن بود که این بره تو رو هم برای که درسته که افراسیات محبت کرد، محبت میکرد، فلان ولی اونجا هزار جو ممکن هست بزنن که همون که زدن همون کسی که یا دایش بوده یا جدش بوده، نمیدونم چه زهر ماری بوده مادر سیاوش میگه من از پشت گفتی برزم، یا تو اول داستان، زنیکره که میگیرن توی بیش رو میگن تو خانوم به این گفت بابا مست بود اومد و میخواست بزنه و من در رفتم و رفتم و خیلان خب اومد گفتم کجایی هستی؟ خانم گفت که من فریدونیم مادرم خاتونیم و از نیای منیم که من اونجا در مورد نیا گفتم که نیایا جد پیشه یا دایی دوتا معنی داره در فارسی و گفتم که اگر این گرسیوز همون از گرسی باشه نسبت نزدیک داره و سیاهوش ولی خب باشه برادر هم نزنی دایش داییش یا جدش بهش رنش برد و سرش بباد دارد اینا پیش میامده و جوان تجربه نکرده بعدم هم میبینه مهربانی کردن اون وقتی هم که افراسیاب داشته به اون محبت می کرده که واقعا هم قصد دشمنی ننشته اگه قصد دشمنی داشت دخترش رو تو دخترش داده بهش ولی خب عوض میکنم چیز میکنم یادمه که مرحوم ده خدا رو رزاشا خیلی چسبیده بود بهش که شما وزد فهنگ رو پسید. شما مرد پردمند دانشور دانشمند درجه یکی هستید و وزد فهنگ رو تو قبول کن کاری به رفت و آمد کابینه ها هم نداشته باش. هرکی نخواست وزیر باشه مهم نیست من تو رو میذارم این می بزاتهنگ رو می‌سرم دست تو. تو اون خوبه دیگه. هیچ حرف بدی نیست که. ده خدام که رضا شاه دروغ نمیگه. یعنی شاه در مقام فاتحی که نمیاد که گول بزنه اینو که دروغ که نمیگه، راست میگه. ولی ده خدا تو اون امپراتور زندگی کرده. مردم میشتن. میدونست که یه دو سال که بگذاره اون کسی که دندون تیز کرده واسه این وزیر فرهنگ یه جوری بالاخره جلو شاه اینو سیاش میکنه و بعد یا با خشم و غضب باید بره یا حداقل اینه که فردا که میاد بره اونه که آقای حسن گوشتون جورش فریضه. فقط باید که پیاده بره خودش. کو قربان در دست‌ها اعلی حضرت مردم لایق و کافی بسیارند که بتونن حتی بهتر از من وزیر فرهنگ رو اداره کنم. اما من کاری دارم میکنم که اگر این کار من بذارم زمین هیچ کسی دیگه این کار رو و او همین نوشتن لغتنامه است گفت من مشغول نوشتن لغتنامه هستم و این کاریست که اگر بنده انجام بدم هیچ کسی دیگه نمیتونه انجام بده و انجام نمیده بنابراین احلا اجازه رو فرمان که من بشینم خونه این کار تمام کنم این کارم کار است. کار در دوره تمام تمام میشه و به نام علی حضرت میمونه به زشار قانه کرد و نرفت نرفت که میدونست که با اون کار کردن سخت گیجش میکنه متملقین و باز اینچون دور قابچین ها با انباع اصلا رئیس چهربانی درگیری بایی رئیس چهربانی رئیس سنمنم تأمینات رو اینا پیدا کنن رزلن دیگه میرن واسه پاپوش میکنن این که بشست کنه چیزی هم همینطور که میتون از این خدمنددا پنج نشین چون من تجربه آموخته بودن میدونستند که این از اینجا که رفت و در دسترس اییرون یا دیگه نبود هزار بلا هم کهش بیاد که اصلا قابل پیش بینی نیست ولی خب فقط میشه فکر کرد که بله هست اینا وجود نفس رفت از آن دو خرتمن پند و باز اینجا اشاره میکن برای اینکه سرنش بود بهگررگ نبود راز چرخ بُنند. من درنجم اعتراضش. چی؟ نه، خراتمن دو تا اون بهرام بوده است. میگه سیاوش از اون دو تا خراتمن پندشون رو نپذیره. درست؟ تاو چردی؟ نه پس رفت از آن دو خیرت من هم دگر بونه بود راغ به چرخ بلد. حالا ببینید فردوسی چقدر ذریفه اول وقتی بحرامو زنگه دنن حرف میزنن یا ساکت ساکتی دید بهش نیست فکر بود وقتی تموم شد این فکر این تو تلش درست شد اما هنوز نگم. فردوسی میگه که نفذیرفت یعنی اول فکر سیاهاش می. بعد جواباشی که برای حسوسی نفذیرفتن اول نگه رفت، برای اینکه راز آسفل چیزی بعد میگه توضیح داری فکری که اول کلش بگه که مبنی برای این که نه این آفیر خود میگه. بعد توضیح میگه چون این داد پاسخ که فرمانشاه برانم برانم یعنی اینطور عقیده دارم برانم یعنی به نظر من اینطور میاد اینطور عقیده داره برانم که بر طرز خورشید و فرمان شاه بالاتر از خورشید و ماه <تصفح> ولی که به فرمان یزدان دلیر نباشد که همه نه پیل و نه شیر اولا این نه یه قام بسیار ظریف داره که اکثر در مملکت ما مرات نمی میگه که نه حسن نه تغی، نه علی حتما من نشد این جمعه غلطه برای اینکه نفیه در نفیه میشه اثبات چون جعب خوندی که منها در منها میشه به اضافه نه حسن نه علی نشیدن یعنی حسن و علی عرف من شنیده امانشنید. اگه بخوام اونجوری بگیم بعد بگیم نه حسن عرف من شنید نه علی نه نه نردید درست میشه برای که فعل دیگه نشیدن نمیدیم فعل مثبت میدیم چون نفیه اول آقا برسید درست شد؟ یک جا شما تو حافظ سعدی این خطار رو نمی بینید که نه حسن نه حسن نه حسن نه تقییرد منو هیچ جنید فقط یه جا هست میگه که من میخوام مثلا نباشه نه حسن نه حسن این اون نمی نه نمیخوره نشیر شطور خواهم ندیدار عربم یعنی شیر شطور ودیدار عرب رو نمی حالا اینجا نگاه کنید میگه که چنین داد پاسخ که فرمان شاه برای که برترز خورد کنیم ولی که به فرمانی از یزدان دلیر نباشد یعنی هیچ کس در برابر فرمان خدا نباید دلیری بکنه خواه که باشه خواه مه باشه یعنی کوچیک و بزرگ خواه پیل باشه شیر شیر. به فرمان یزدان دلیر نباشد که همه خدا هیچی نیست بعد میگه بعد, بعد روی این استناد میکنه که اگر من به این ترتیب بدون هیچ گناهی دست به گشاییم به خونه این مردمی چاره جاو خدا چی اینی میخواد بگه کسی کوز فرمان و یزدان به تاپ سراسیمه شد خیشتن را نیاد <تصفيق> همین دست یازید باید به خون میگه من اگه بخوام مردم چیز بکنم باید دستم به خون مردم رنگین بکنه به کین دو کشور بودن رهنمون باید من را راهنمایی بکنم به کینه بین دوتا کشور در حالی که اون طرف داره در سوال میزنه ما هم که گفتیم که ما حق خودمون رو خواهیم ما به کسی نظری نداریم حالا من باید شروع کنم به چین ورزین این یکی میگه که من مجبور اینشم که جنگ کنم و دست به خون مردم بکنم و این،, این،, این چیز خدا نیست این مورد رضای خدا نیست یک دو فوق. میگه شما گفتیم که گروغانه را رو آزاد کنم زبهر نوا هم بی آزارت بود میگه نوا ها را من آزاد کنم هر باقی کارم را بکنم برای همون نواها ها بعد داد میزه میسرد که چرا اینا را آزاد کردی؟ که نگوردی من دارشون میزن؟ زبهر نوا هم بی آزارت بود سخونهای دیرینه یاد دارد روشنی دیگه اگر باز گذم میگه حالا اگر این کار اینا نکنه امجرد که گفته که اگه تو موافق نیسی پاشو بیا سفا بده به توست اگه برگردم باز کردم از این رزگاه شوم کارنا کرده نزدیک شاه یعنی اگر هیچ افرام نکنم یه, یه،, یه،, یه شرقش اینه بهرام بشه تو جنگ کن تو چی کاری تو کاری نیست تو معمولی میگه یه شرقش این از که من جنگ کنم باید خون مردم بیکنم تازه جنگ بکنم گروگانر که آزاد کنم سرمون باید مرافض دارم اگه نه جنگم نکنم گروگانرم آزاد کنم هیچ کار نکنم برم پیش شاه حد اقلش اینی که می جوون درست کردم در در دو متر خط ارده اینکه که دو نفره نمیدارم چیز کنی ندارم بازگردم از این رضا شوام کارناکرده نزدیک شاه همون خشم و پیگار باز آورد، سرش که قمم برد کنار آورد. بار آورد باشه. گفت با از هیچ کدوم اینه نمیشه. جنگی نمتونم میکنه. گروگانه هم نمتونم آزاد کنم اگر اونجوری باشه که شما میکیم. تنهایی هم برم پیش شاینی کار نکردم. برم پیش شاید بازم, بازم فرد. اینه که اینا هیچ کدوم هیچی بعد میرسه به آخرین قسمتش. چه اما اگر شما ناراحتین از این که من بهتون دست دادن که این یکی توصفه ها نگه یا تو هم این چیز رو ببریم چه افراسی ها اگه فکر میکنیم که از این کار من دلتنگین ناراحتین هیچ اشکال نداره من خودم نمایدگی از طرف خودم قبول میکنم به عنوان فرستاده خودم خودم میره اگر تیراتان شد که کار من بپیچید پیچید گفتار من فرستاده خود باشم و رهنمای که خودم راهنمایی این گروانا و بردن ایش خودم میگیرم. فرستاده خود باشم و راهنمایی بمانم بر این دشت پرده سرار موندن به صورت متعدیسی یعنی سرار پرده و برساط خودم رو در همینجور باقی میگذارم خودم میرم بمانم در این بر این دشت پرده سرار بعدم در کمال نجابت میگه کسی که نبینت نبیند گنج من چرا برگمارم بر اون رنج کسی که نفع من بهش نرسیده چرا من زحمتش بگم؟ بکن یه سآل داشتان سرش بخون. یعنی چی؟ عشق عشق دیگه مال سالها بیرون بودن، ها مال سالها خارج زندگی کردن؟ من به ذهنم نمیزید که سرشتو معلی کنند که مثلایی که مثلا چند سال ایرون بودی باشند میدوند خیلی ساده هست ولی خب یه تون معذوری چایه ندید؟ خب این بخواستم این هم بگم که این این تا پوزیشن مختلف هر دوش مندار درست میاد هم حرف دوش... بهرام دو دو دو دو دو دو و زنگه هم حرف ایشون و حرف ایشون آخرش منتقی میشه در خب درسته یعنی واسه همین ولی به نظرم منم باز درست میادی اینقدر کنوینسینگی درسته ولی به هر حال اول همه باید رستم میادیم اگه راه پیرون اومدن از این گرداغ رو میگه میشه اینو اینا هر دو کار اینا کار خیلی مثلا تریتیکال خیلی رادیکال اصفیسی نواز فرزمشا رو بزنه کنار بره یا اینکه به خلاف مید خودش جنگ کنه هر دو کار سخت و این وسط راه دوم خطره به قلبی از دست رفتن تازه تخت ایران و شاهزاده ولیهت ایرانو داره که داشتن داشت یعنی احتمال این داشت که قیخسرو هم کشته بشه از بین بره قیخسرو مجبور شد خودش میذاره به دیوونگی اصلا وقتی آوازهش به افراسیاب افراسیاف نشوند که خول و پیران بیچاره قذیر احطاسیا قشیش که آبی این بعدش هیچ عده درست نداره داره چوپوگی میکنه خبر نداره قذیر احطاسیا و قیخسرو هم به خاطر که نسل کیان منقطع شد و این مسئله همون مسئله ایش گفتم که این که خاطر پادشاه توی اونه که اصلا اون میکه بخوریم و سیاهاش از آتش بکره میکه این با اینکه ما میدونیم که این زنی که گناهکاره و چیز کرده و این ولی خاطر پادشاه مشبشه خاطر پادشاه فریشانه و اگر خاطر شاه فریشان باشه ممرکت در آشون بگه این برای این که مملکت آرام بشه بعد خاطر پارچه ها اول آسوده باشه و برای آسوده خاطر او باید سنگ رو به سبی یعنی این نوع چشم یگانه تو رو باید ترسه تو آتیش بند رو این از که تخت و تخت حدرش فقط واسه خلصی هایش تنها نبود یا واسه تمام مردمی کنیم مسئله این هست برواد یا وش چو پاسخ چون این باز به پشمورد جانت دو کردم کردم گردم فراث زبیم جداییش گریان شدن تو بر آتش تیز بریان شدن همینی چشم و دل روزگار که اندر نهان چیست با شفیاد میبینی یه روزگار زمانه میتونستی قرضیش بس. نخواهد ناحت بودن نیز دیدار او از آن چشغ گریان از آن از آن, آن چشغ گریان شده از کار میگه به دلشون براش شده بود که دیگه بسین که عاشقش نمیدین و از این او گریه کرد چون این بو زنگه که ما بنده ایم به مهر صفهبد دل آگنده ایم بدای تو بادار تن جان ما چون این باد تا مرگ پیمان ما چو پاسخ افتنین یا از نیکا تو این گفت با دنگ فیدار که شا. شو شاهد طوفان سفر را بگوی که از این کار ما را چه آمد به از این آشتی جنگ سفر من است همه نوش تو درد و زخر من است پیمان تو سر نگرد در و مگر دور مانم از تخت مهین جهان دار یزدان پناه من است زمین تخت و گردون طلاح من است و دیگر که از این خیره کار نشایست رفتن بر شهریار یکی راه خوبشای کابو دارم به جایی که کرد ایدت آبش خورم یکی کشوری توی من در جهان که نامم ز کابوز گردد نهان ز خوی بد او سخن نشنبم ز پیکار او یک زمان زخنبم اینا میگه که همهشون نراحت بودن و میدونستن که دیواری نیست این سر روشت را به همین دلیل لغت که سیاه و جواب داد اینا خیلی سخت ناراحت شدن و یکی از و زبیم جداییش این فکر جداییش رو آن کرد گریان شدن شو بر آتش کهیز گریان شدن همیدی چشم و دل روزگار که اندرنهان چیست؟ باشق یاد زمانه که میدونست قضیه از چه قراره و چه اتفاق خواهد از را چشم دل روزگار میدید که پنهانی چه سرنوشتی برای شاهزاده فراهم شده نخواهد بودن نیست اینا رو فردوسی میگه که یعنی نظاری آقوری داستان را باز میاره جلو نخواهد بودن نیز دیداخ رو بود میگه اینا نراحت برای اینکه ممکنی دیدارش نخاشه و دل آدم اینطورها شمیدید که اصف و سگ و اینا مدت این قبل از اینکه زلزله بیاد تراسیه میشن ناراحت میشن و, و میمیدیرون حال شاید اونا مثلا این صداهایی رویستن من که او شما قدرت شنیدن صداش اون صدا رو نداره یا مثلا بوعایی بیشنم به دلیلی ولی آدمی هم این, این, این حسه ششمو داره گاهی حس میکنه که این یه طرف دیگه دیگه, دیگه. نخواهد بودن دیدار اوی از آن چشم گریان شده از کار اوی به این دلیل گریان شدن چون این گفت زنگه گفت ما رو حرف شما حرف دادیم نه این بود که نخواهی دست کنید ما فکر کردیم که نظر دادن دیگه چنین گفتنگه که ما بنده ایم به مهر سفه دل آکنده ایم آکندن پر کردن یعنی دل ما پر از مهر سفه بده فدای تو بادا تن و جان ما چون این با تا مرگ پیمان ما روشنید چون پاسخ چون این یافت از نیکا وقتی که سیاوش توجه کرد که زنگ مثلا برای نفذی رفتن معمولیت نبوده که این هرکارو زده چون پاسخ این یافت از نیکا چون این با زنگ بیداشا که شو و شاه توران سپه را بگوی که از این کار ما را چه آمد به روی؟ از این کار ما را چه آمد به روی؟ باز دنبالش منظر بونم شما بگیم نگفتیم؟ این متر هم تکرار شده بالاسه پیداش کنیم بیده نه برای دو نه نه ما که باید و که آمد به روی اونجا که مارا چه آمد به روی اینجا هست که از این کار مالا چهان آمد درونید که شو شدن یعنی رفتنه شو یعنی بود شدن به این معنی فعل تامه معنی رفتنه در حالت مثلا هم بگیم که حسن مریض شد اونجا فعل تام نیست به غیر تامه یعنی معنی نداره نمیتونی میگه حسن شد یک کلمه باید بهت معنیش تمام بره. شدن اگه معنی رفتن باشه مثل اینجا تل تامه اگر نه در بیشتر ممارد تل غیر تامه که شوق شاه توران سپه را که از این کار ما چه آمد به برو به بگوی شاه توران پا را که افراسی ها اونجا نبودی افراسی اونجا نبودید یا به هر حال فرمونده ای هست این شاید توران سپاه یعنی فرمونده سپاه به فرمونده سپاه بگو که ما از این کار چه به چه سرمون آمد از این آشتی جنگ بهره من قسمت من از این, از این سل و از این آشتی جنگه بحر. اون بهر هست یعنی قسمت همه نوش تو درد و زهر من هست. نوش یعنی شیرینی. گفتم برای تو. نوش یعنی شیرینی. ارمنی‌ها به... ارمنی‌مون نهیمه دیکنش به خورسه. ارمنی‌ها به شیرین، زن خسوف علیز، میگن آنوش. آنوش ترجمه فارسی شیرینه. یعنی شیرینه. نوشی من همونید؟ نوشی نه من همونید. مستد آنوشه آنوشه؟ اون از آنوشه منی مرگه. اون رفتی به نوش نداره. آنه آنوشه یعنی بی مرگ شر... او اون نوش نیست اون روشه اون او روشه روان یعنی دارای روان بی مرگ و همین دلیم بهترین و درسترین صورت نوشتنش اون شروانی نه اونوشی روان نه چه سعدی نشه نوشین روان معنی رو توجه نکرده چیز میخوایدیم؟ چی؟ همه نوشتو یعنی این شیرینی که برای تو درست کردم که جنگ نکنی و آسکی بکنیم شیرینه دیگه این میگه این شیرینه تو برای من درد و زهره بلی که من اینجا درم ترسیم کشم به پیمان تو سر نگرد تویی توهی دور مانم به تخت میگیم جهت تا اگر من از تا تخت محروم بشم از سر پیمان خودم نمیزدم و اگر یادتون باشه رستم آخرین حرفی که به کافی زد این مجید گفت من رت بگم از بیخ سیاوش اهل پیمانش کردنیست به پیمان تو سر نگردد توی او گرد دور مانم به تخت مدن. جاوندار تناه من است زمین تخت و گردون کلاه من است بر همین به من, تو من چه دارم. زمین تخت من است کلاه کلاهی. آسمان کلاه من است جاوندار تناه من است زمین تخت و گردون کلاه من است و دیگر که از این سیر نا کار کار نشایست رفتن برای شهریار میگه اما دیگر این که رفتی من این کار انجام ندم یعنی جنگ نکنم دیگه نمیتونم برم پیش رفتن پیش شهریار شایسته نیست نشایست رفتن برای شهریار کارشو انجام نددم فرمانشو انجام ندادم خلاق فرمان رفت دار کردم دیگه نمیشه برم اونچار یکی راه بکشای تا بگذرم زرم سیاه باش در تورا هم نمونه من اجازه بدین اینجا رد بشم برم جای دیگری که کابوس اصلا منه پیدا نه پیران بیچاره ادبر اثر حسنیت 100 درصد و افراسی ها آقا این بهترین موقع که این چین بین ایران و توران رو به کلی از این ببریم این وارث تخت باقوس هم پیره پس فضا هم می میده شاه ایران اینه تو هر چقدر عزت به این بذاری و محبتش بکنی در حقیقت درخت کینه رو بیشهاش نسدی میگه باشه بعد که میاد خیلی دوست بوده دیگه. خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی نبوده که ببینه و دوستش ندیشت باشه بعد با هیران خودش دفترش میدرسی یاوش که باش خوب موکشی و از یاوش پسر میاد نام فرود که در اصل لیمانگی همین توس خوش نمیشه اونم یه تراجدیلی که از تراجدیلیت کنید که این خوش رو میگه بروفتی از راه کلات نریا به توس میگه من این وزر درست از هم میره سر راه برمی کنم به فرود و خلاص درگیری به در از دختر پیران جریره یه پسر میاره به نام فرود و بعد سیاقش باز دوباره بباشه پیران باز دوباره به افراسی ها پیله که دختر خود تو بده میدونه بزر پیوسته خون بشی و دوتا امرکت یکی بشی افراسی ها بسیار آدم دنیا دیدهی بوده در زن. میگه پسر جان حرق حسابی من از دانا شنیدم دشمنون نه باید پرور نه باید دشمن به لخوای دشمنی من میترسم از این کار میترسم که بلایی سر من بیاد از حکیمانم شنیدم که نتیجه این کار آخرش بده و یک کسی پیدا میشه که پدر من در میره فیران نه اینا رو خیالات میکنی نه ظاهر کار این که اون شاهزادو بیاد و فهم پا پاهم بشو و بعدا به سر تخت و تاج ایران بنشینه یکی دو کشور در کمال محبت و اصلا با هم به تمام این گرفتاری ها و ناراهدی ها و چینه هایی که هستن بینید و خلاصه بالاخره راضی می کنه افراسی ها با که دختر شده اسم دختر در این نسخه در از که از وی نسخه های نیست بریگی است. ولی تون اون سایدیه فرنگیسته الان هم ما فرنگیست می شدیم. تموم شدیم مثل اینکه مثلا کلمه اسفندیار قاعده تن باشه اسفند داد داد ها یعنی زایده شده اسفند داد یعنی مقدس زایده شده ولی خب دالا اقل باشه اسفندیاد ولی تحقیق کردیم اسپندیار و ما هیچ جور اسپنداد یا اسپندیادو حاضر نیستم قبول کنیم حتی نیست قبولم نمی کنیم نکنیم اما وقتی تحقیق داریم میکنیم کنیم باید بدونیم که این اسم انسوز خونه فرنگیست هم همینی که چی چی جریره دختر پیران یکی راه بگشای تا بگذرم به جای که کیر بیزد آبش خورم آبش خور آه... توی رودخونه ها و اینا جای خیلی هم عمیق بوده از یه جای معینی میجود برنده به آب حتی حیبونات هم تمام حیبونات باید نشاطت یه بار آب بکنند بنابراین شما یه حیبون یک جا حتما باید بسته باشیم که اینجاها آب هست باید نمیتونه زمین بید. و در هفتان رستم همین مطلب رستم یک میش میبینه تو ریگزار و بیابون و کبیر فکر می کنه این میش که اینجا نمیتونه بدون آب باشیم و حتما باید که چه یه بار آب بخونه و هر مصیبتی بوده دنبال این میش میره و بعدم میگه که مثل این اینو خدا اصلا ترستازه بود برای نجات من اون وقت این سر آب رو این حیمون هم راه معینی میرن آدم هم نمیتون اون جایی که میرن بر سر آب اون رو بهش میگن آبش خور ولی مجازن وعنی نصیب و قسمت آبش خور من کجا خدا تقیی کرده یعنی منی قسمت من چیه بنده وقتی که سن چهاره پونزه ساله دیر چهاره متوسط تو, مربی بودن. مربی تو اون مسجد مربی بودن مسجد مربی بودن ساختمون مسجد مربی نبودن اون حیات مسجد مربی توش عاصمه مسجد تو کلاس, کلاس, تو کلاس چهار کلاس چهار و دوم بود پنده اونجا تو بازارچه مردی کلاس چهار زورم می رفتی. یا کلبه ازوی کلبه اچه می زبون بود قیمتش پا تو پایشهی یا دیزی میخوردیم، دیزی هم بیادیم هفتن روید، سارده شد یا میرسیم چلویی، چلویی هم میرسیم چلو پورش، در روز یک قرون بود، چلو کواب هم مثلا سی شیعه بود، دوزار، دوزار بزنمت اون سالا من مثلا پاریس و اینا رو تو فیلم فقط دیدم خواب که دیزم فقط و اگر یه روزی به من، می گفتن که آه تو قسمت این نیست سن 65 سالو بیشت 67 دیگه آب کایفورنیا رو بخوری می گفتن تو واعتما بی بونه بعد شهر لوسانجلوس شهر پتارگان زندگی کنی چه فیلم دوست داشتم و می رفت. حالا ها می رفتن حالا نراستم حتی این یونیبرسال این چیز رو دیگه. و هر حال آبش خور این رو دیگه تا بفنده شده که سن سن سر پیری در پیران سر آب کاریفوریا اونفاره این آبش کور اینه میگه برو پیش سرمونده سفانتوران بگو که چه بلایه به سر ما اومده و من این آسایش که شما فراهم کردم جز ناراحتی برای من نداشته و من با این ترتیب پیمان رو که نمیشکنم یک کار نکردم پیششان نمیتونم بردم دو فنابراین موافقت کنید راهی باز کنید جلو من که من اینجا بگذارم برم به کجا؟ به جایی که خداوند اونجا آبشکوره من اونجا به اونجا تقیی کرد یکی راه خوش بگذرم به جایی که کردی و آبشکوره یکی کشوری تو من در جهان که نامم زه کابوس ماهت نمون زه خوی بد اون سخن نشنون زه پیکار اون یک دمون بگنم یک جایی برم که از اخلاق و زشت اون چیزی نشنم و از ضعب و او یک لحظه آز راحت بشن قنودن یعنی خوابیدنه استراحت کرد